دوستان خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس برای بررسی مقدماتی کلام خدا خوش اومدیم. ضمن سفر در کلام خدا عهد قدیم رو پشت سر گذاشتیم و وارد عهد جدید شدیم و در حال حاضر از انجیل یوحنا عبور می‌کنیم. خیلی خوشحالم که امروز با ما همراه هستید چون درس امروز حاوی مطالب بسیار مهمی هست که به ما کمک می‌کنه مراحل تولد تازه رو که شامل سه مرحله هست درک کنیم. دا که این درس ها به شما کمک کنه در ایمانتون رشد کنید. با هم به معلممون گوش میکنیم. در باب هشت انجیل یوحنا گفتگوی خسمانه بین عیسی و رهبران مذهبی ادامه پیدا میکنه. اما مثل باب های 5 و 6، باب هشت هم با تمثیل زیبایی در شکل یک گفتگو آغاز میشه. این رهبران روحانی به ظاهر بسیار با محبت و دلسوز هستند. اونها این گفتگو رو با آوردن زنی نزد عیسی شروع میکنند که این زن در حین عمل زنا دستگیر شده. اونها این زن رو نزد پاهای عیسی میندازن و به او میگن او حین عمل زنا گرفتار شده. موسی میگه او رو سنگسار کنیم، تو چی میگی؟ عیسی این سوال رو نشنیده می میگیره. او میشینه روی زمین و چیزهایی می مینویسه. اونها دوباره به او میگن موسا میگه او رو سنگ سار کن تو چی میگی؟ کسی نمیدونه عیسی چه چیزی داشت روی زمین مینوشت اما این مردم به نظر میرسید که عجله داشتن یکی از محققین کتاب مقدس پروتستان این نظریه رو میده که عیسی داشت روی زمین اسامی مردانی رو مینوشت که با این زن زنا کرده بودند به این دلیل هم بود که وقتی عیسی گفت کسی که بی گناه سنگ بزنه اونها بلا فاصله یکی یکی اونجا رو ترک کردم. من فکر می کنم این محقق عزیز چیزی رو عنوان کرده که توی این متن وجود نداره. هیچ اشاره به این نشده که عیسی چه چیزی روی زمین می نوشت. فقط شاید به این خاطر که میخواست به اونها بیاعتناایی کنه چیزهایی رو روی زمین می نوشت. ایسا بالاخره میسته و میگه آن کسی که در میان شما بی گناهه سنگ اول رو او بزنه ایسا باز سر خود رو پایین میندازه و شروع میکنه به نوشتن وقتی اونها این رو شنیدن از پیرها شروع کرده یکی یکی بیرون رفتن و عیسی تنها با اون زن که در وسط ایستاده بود باقی موند بعد عیسی رو بزن میکنه و میگه گمون میکنم اون موقع باید لبخندی هم به لب داشته باشه عیسی از او میپرسه اونها کجا رفتن کسی تو رو محکوم نکرد، زن گفت هیچ کس سرورم، عیسی گفت من هم تو رو محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. کلمه سرورم رو در اینجا ملاحظه کنید که در این گفتگو با عیسی کلمه بسیار عظیمیه، زن او رو سرورم خطاب می در واقع شاید چیزی که زن میگه این بوده. بر اساس معیاری که تو اینجا برقرار کردی، هیچ مردی این حق رو پیدا نکرد که به من سنگ بزنه. تو تنها شخص بیگناه در اینجا هستی. حالا تو چی؟ آیا تو منو محکوم میکنی؟ اما این کلام زیبا را از ایسا میشنویم که میگه من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. این داستان زیبا حقیقتی رو به ما نشون میده که بارها و بارها در کتاب مقدس اون رو میبینیم. یادتونه وقتی ما به مسئله فریسی و باجگیر رسیدیم گفتیم که ما مستعد این هستیم که چیزی رو که خدا فراموش میکنه به یاد بیاریم و چیزی رو که خدا به یاد میاره فراموش کنیم. او هرگز از ما نمیخواد که فراموش کنیم که گناه کاری. وقتی گناه می کنیم و به گناهمون اعتراف می کنیم، ما گناهمون رو فراموش نمی کنیم. اگرچه اون گناهان رو اعتراف می کنیم و به خون عیسی مسیح برای بخشش اون گناهان اعتماد می کنیم، اما باز هم احساس گناه می کنیم. کتاب مقدس در کتاب رومیان به طور جامع به ما میگه که چطور این امکان داره خدا گناهان ما رو میبخشه خدا هرگز فراموش نمیکنه کنه که ما گناهکار هستیم اما گناهان ما رو فراموش میکنه مرگ مسیح بر صلیب این امکان رو برای خدا فراهم کرد که هم گناهان ما رو ببخشه و هم فراموش کنه ما هم وقتی به گناهانمون اعتراف میکنیم باید اونها رو فراموش کنیم اما ما مشکلی با این داریم ما مایل هستیم که گناهانمون رو به یاد بیاریم و گناهکاریمون رو فراموش کنیم اما خدا هرگز نمیخواد که فراموش کنه ما گناهکار هستیم این چیزی بود که اون مردانی که قصد داشتن زن رو سنگسار کنند فراموش کرده بودند اونها فراموش کرده بودند که خودشون هم گناهکارند عیسی اونها رو با این میار به چالش میکشه بسیار خوب او رو سنگسار کن اما اولین سنگ رو کسی بزنه که بیگناهه جالبه که پیرترین اونها اول از همه اونجا رو ترک میکنه برای جوانها خیلی راحته که فکر کنن کامل و بی هستند اما وقتی پنجاه سال از سنشون گذشت دیگه اده زیادی خودشون رو کامل نمیدونن تجربیات شخصی شما معمولا افسانه بیگناهی و کمال شما رو از بین میبره بنابراین پیرترین مرد قبل از همه اونجا رو ترک کرد این ای برای گفتگوهای خصمانه بیشتری بود که عیسی با این رهبران مذهبی داشت. این گفتگوهای خسمانه در باب هشت زمانی به اوج میرسه که عیسی برخی از سخنان تندش رو اظهار میکنه. میخوام گفتگوی باب هشت رو اینجا خلاصه کنم که با مسئله این زن شروع شد. عیسی مدتها بود که با رهبران مذهبی گفتگو میکرد و در صدد بود که اون رو به نتیجه ای برسونه. عیسی با اونها گفت که من میدونم از کجا آمدم و میدونم که کجا خواهم رفت اما نمیتونم توقع داشته باشم که شما بدونید من از کجا آمدم و به کجا خواهم رفت من از نزد پدر آمدم از آسمان آمدم من همیشه کارهایی را انجام میدم که پدر از من میخوام این جاییه که من ازش اومدم من از آسمان آمدم و به آسمان هم باز خواهم گشت اما شما این رو درک نمیکنید چون شما از نزد خدا نیومدید در واقع شما در اسارت هستید این نکته کلی گفتگو باب هشت هست عیسی با مسئله گناه برخورد میکنه او گناه رو شکلا مثل اسارت میبینه عیسی به اونها میگه مشکل شما اینه که آزاد نیستید اولا شما اسیر جهل هستید چون در مورد چیزهای روحانی و در مورد خدا اطلاعات زیادی ندارید شما منو درک نمیکنید که از کجا آمدم؟ و به کجا خواهم رفت عیسی ها به اونها میگه در واقع شما اسیران گناه هستید و از گناه زاده شده اید گناه شما رو کنترل میکنه و در گناه خودتون خواهید مرد مگر اینکه به من ایمان بیارید عیسی واقعا با اونها تندی میکنه او میگه شما از شریر هستید پدر شما شیطانه و در واقع شما تحت کنترل پدرتون شیطان هستید و به سوی شیطان هم باز خواهید گشت شما از جهنم آمدید و توسط نیروهای تاریکی کنترل میشید شما از جهنم آمدید و به جهنم هم خواهید رفت مگر اینکه به من ایمان بیارید عجب موعظه‌ای یک بار به معزه یک واعظ محلی از یه رادیو گوش می کردم درست در وسط موعظه‌اش تقریبا مکس کرد و گفت حالا اصل معزه اینه وقتی من یک معزه خوب رو میشنوم، گاهی میگم حالا این شد یه معزه حسابی وقتی عیسی به این رهبران مذهبی گفت که اونا از کجا آمدند او داش موعظه میکرد عیسی این گفتگوی خصمانه رو به این ترتیب به پایان رسوند وقتی عیسی اون گفتگو رو اینطور به پایان رسوند شکی نیست که واکنش های متفاوتی وجود داشت وقتی که اون چیزهای تند رو گفت بسیاری بر او باور کردند اینها افرادی مثل نیکودیموس و یوسف بودند اینها برخی از رهبران مذهبی بودند که تبدیل شده بودند عیسی به اونها علاقمند بود و چون این اظهارات تند رو بیان میکرد، بسیاری از این مردان به او ایمان داشتند. وقتی برخی از اونها اقرار کردند که ایمان دارند، عیسی تعالیمی به اونها داد. عیسی گفت حالا که شما ایمان دارید، این مرحله اول تجربه مسیحیه. بذارید بگم مرحله دوم چیه. میخوام در کلام من بمونید و شاگردان واقعی من بشید. یک شاگرد مثل یک کاراموز هست. یاد گیرنده ای که انجام میده و انجام دهنده ای که یاد میگیره عیسی گفت در کلام من بمانید و شاگردان واقعی من بشید این مرحله دومه بعد عیسی درباره مرحله سوم با اونها صحبت کرد که من معتقدم تجربه تولد تازه بود عیسی نمیگه که اونها تاکی در کلام او بمونند و شاگردان او باشن اما او به یهودیانی که به او گرویده بودن گفت اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد در این مرحله اونها به عیسی گفتند ما غلام نیستیم منظورت از آزاد چیه ما در زندان نیستیم عیسی گفت بله هستید چون هر کسی که دائما گناه میکنه آزاد نیست اگر شما کاری رو که می نمی کنید، اما کاری رو میکنید که به اون مجبورید شما تحت کنترل گناه هستی. اما من میتونم شما را آزاد کنم. و دستورالعملش اینه. اول ایمان بیارید. این مرحله اوله. بعد منو پیروی کنید و شاگرد من بشید. این مرحله دومه. و بعد منتظر اتفاقی باشید که براتون خواهد افتاد و در نتیجه اون اتفاق مثل کسی خواهید بود که از زندان آزاد میشه. در تجربه مسیحیت سه مرحله وجود داره. مرحله اول باور هست. مرحله دوم پیروی و شاگردی و مرحله سوم تجربه اتفاقی هست که طی اون شما مخلوق تازهی میشید. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده است. به عنوان یک شبان من با افراد زیادی در مطالعات و جلسات مشاوره بودم و از خیلی ها شنیدم که میگفتن شبان من مطمئن نیستم که مسیحی هستم یا نه من همیشه اینطور جواب دادم اگر شما بشنوید که ما در مورد شما صحبت کنیم و از شما به عنوان غیر ایماندار بحث کنیم، آیا این شما رو میرنجونه او بله مطمئنم که میرنجونه خب در این صورت شما ایماندار هستید بله ایماندارم بعد میگم عیسی در باب 8 یوحنا در مورد مرحله سوم صحبت میکنه از تولد تازه از زندان خارج شدن آزاد شدن؟ پولوس گفت چیزهای کهنه درگذشت و همه چیز تازه شد آیا شما اینو تجربه کردی نه شبان مطمئنم که تجربه نکردم وقتی که شما پیرو مسیح هستید باید ثمرات روح در زندگی شما دیده بشه محبت شادی آرامش مهربانی و چیزهایی که اگر باز هم بگید نه نه من اینطور نیستم این تجربه رو ندارم خب پس بیایید در مورد مرحله دو صحبت کنیم آیا شما شاگرد هستی؟ شاگردی چیه؟ این سوالیه که من اغلب باش مواجه میشم. شاگرد یعنی چی؟ این چیزیه که بسیاری از مردم فراموش میکنن. تا اون که من متوجه شدم این گفتگو اینطور به پایان رسیده. عیسی گفته ببینید اینجا سه مرحله هست. مرحله باور هست. تا وقتی باور نکنید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما وقتی باور کردید این پایان داستان نیست. تازه شروع کاره. عیسی میگه حالا شما آماده مرحله دوم هستید منو پیروی کنید و یک کاراموز بشید یک شاگرد بشید و در کلام من بمونید دنبال من بیاید تا شما رو سیاد مردمان بکنم او نگفت که این چقدر طول خواهد کشید برای من دوازده یا سیزده سال طول کشید که وارد مرحله سوم شدم تجربه تولد تازه وقتی با خیلیا صحبت کردم فهمیدم که برای همه کم و بیش همینقدر طول میکشه نباید اینطوری باشه بعضیا خیلی سریع رشد میکنند. برای ایده ای این تجربه ای آنی هست شاید در همون بدو شروع این رو تجربه کنی اما در اکثر اوقات ده دوازده سالی سالی طول میکشه حتی گاهی شاید 20 سال هم طول بکشه وقتی که این تجربه رو به دست میارید همه چیز تازه خواهد شد و شما این رو خواهید فهمید در باب سوم پیدایش ما دیدیم که خدا گفتگوش رو با ما با پرسیدن این سوال آغاز میکنه کجا هستی وقتی که انجیل یوحنا رو مرور میکنید بذارید خدا از شما بپرسه که کجا هستی آیا هنوز در مرحله اولی آیا ایمان داری اگر در مرحله اول هستی آیا وارد مرحله دو شدی آیا مسیح رو پیروی میکنی آیا وارد مرحله سه شدی آیا تولد تازه داشتی آیا این حیات ابدی رو که یوحنا برای ما شرح میده داری اگر تولد تازه نداری حیات ابدی رو اونطور که یوحنا شرح میده نداری از خودتون اینو بپرسید آیا وارد مرحله دو شدید؟ آیا تا حالا شاگرد بودید؟ آیا تا حالا از من خواسته شده که مثل یک مسیحی شاگردی بکنم؟ آیا من در کلام خدا و تعالیم عیسی ماندم؟ آیا دعوت او رو پذیرفتیم؟ که مرا پیروی کنید تا شما را سیاد انسانها بکنم؟ طبق باب هشت یوحنا از شما انتظار نمیره تولد تازه داشته باشید مگر اینکه مدتی مانند یک شاگرد زندگی بکنید شما در کدام مرحله هستید مرحله یک یا دو یا سه این نتیجه ای هست که عیسی از این گفتگوها می گیره وقتی عیسی این گفتگوها رو جمع بندی کرد برخی به او ایمان آوردند و عیسی به اونها گفت منو پیروی کنید و شاگرد من باشید وارد مرحله دو بشید و آزاد بشید اونهایی که باور نکردند سنگ برداشتن تا به او پرتاب کنند وقتی عیسی گفت قبل از اینکه ابراهیم باشد من بودم اونها سعی کردند او را سنگسار کنند چون ادعاهای او را باور نداشتند من به خاطر صداقت در اقلانیتشون اونها رو تحسین میکنم. من متوجه شدم امروزه کسانی هستند که در مورد عیسی به یک حد وسطی باور میکنند. اونها معتقدند که او امانوئل یا خدا با ما نبوده او تمام اون چیزهایی که ادعا می کرد هست نبود اما رهبری بزرگ بود یک چهره برجسته تاریخی بود معلمی بزرگ بود و یکی از بزرگترین معلم ها من نمیتونم بفهمم که شما به لحاظ اقلانی چقدر میتونید صادق باشید و به این حد وسط باور کنید من کسانی رو که او رو سنگسار کنن تحسین میکنم. خب کسانی هستند که تقریبا از کل مسئله تفره میرن و میگن او کسی که ادعا میکرد نبود. اما شخص بزرگیم. من فکر میکنم یا ما باید اونقدر صادق باشیم که سنگ برداریم و او را از زندگی هامون بیرون کنیم و یا او رو به عنوان خداوندمون بپذیریم. او رو پیروی کنیم. شاگرد او باشیم و از او بخوایم که ما را آزاد کنه. در پایان باب هشت ما بخش مهمی از انجیل یوحنا رو به پایان میرسونیم. بعد ما میشنویم که عیسی ادعا میکنه که او نوع بسیار خاصی از نور هست. او نوری هست که به کوران بینایی میده. در عین حال کوری کسانی رو نشون میده که به اینکه میبینن فخت میکنن. حالا من از شما شنونده عزیز میپرسم شما کجا هست؟ آیا جز اون دسته کسانی هستید که باور نمیکنند عیسی همونی هست که ادعا میکرد؟ اگر اینطوره ازتون دعوت میکنم که با خودتون رو راست باشید. در کتاب مقدس تفحص کنید و از خدا بخواید که حقیقت رو براتون آشکار کنه آیا شما کسی هستید که به عیسی باور میکنید آیا وارد مرحله دوم شدید آیا شما پیرو ایسا عیسی و شاگردی در باب نو هستید عیسی مرد کوری رو شفا میده بعد از اینکه این مرد کور رو شفا میده سخنرانی بزرگی میکنه به این الگو در انجیل یوحنا توجه کنید ایسا به پنج هزار نفر گرسن قضا میده و بعد معزهی میکنه و میگه من نان حیات هستم. عیسی کاری موجز آسا و یا عملی نمادین انجام میده. شاید یک گفتگو بعد از اون سخنرانی بزرگی میکنه. ما خیلی مایلیم که اول سخنرانی بکنیم و بعد مثال بزنیم. به نظر میرسه که عیسی اول مثال میزنه و بعد سخنرانی میکنه که روش بسیار موثری برای گفتگو است در باب نه عیسی و رسولانش قدم میزنند و مردی رو میبینند که کور مادرزاد هست. رسولان از ایسا میپرسند یا ای استاد به علت گناه چه کسی این مرد نابینا به دنیا آمده؟ خود او گناه کار بوده یا والدینش؟ از زمان ایوب دوستان او به ما گفتند که ما چیزی رو دریافت میکنیم که مستحقش هستیم که البته این برخلاف فیض خدا بنده. ما معتقدیم که مردم چیزی رو دریافت میکنند که مستحقش هستند ایوب و دوستانش به این باور داشتند یادتون باشه واضحه که رسولان هم به این معتقد بودند اونها میپرسند چه کسی گناه کرده این مرد یا والدینش حتما کسی گناه کرده که این مرد کور مادرزاد به دنیا اومده از اونجایی که اونها معتقد بودند که شاید گناه خود این مرد سبب کوریش شده احتمالا اونها به تناسخ هم معتقد بودند در بسیاری از بخش دنیا برخی از روشنفکران به تناسخ اعتقاد دارند. اونها معتقدند وقتی کسی کور به دنیا میاد، شاید به این دلیلی که در زندگی قبلیش چشم کسی رو درآورده و به این دلیلی که کور به دنیا اومده. نظر بر این هست که شما چیزی رو دریافت میکنید که شایسته اش هستید. هر کسی چیزی رو دریافت میکنه که شایسته اش هست. عیسی جواب داد نه گناه از خودش بود و نه از والدینش. بلکه به این خاطر بود که در وجود او کارهای خدا کار بشه تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم وقتی شب می آید کسی نمیتواند کاری بکنه عیسی ادعا میکنه که کار او و خدمتش همون کار خداست بعد او مرد کور رو شفا میده و میگه هدف از کوری اون مرد این بوده که در اون روز کار بزرگی در زندگی اون مرد انجام بشه بعد عیسیا سخنرانی بزرگ دیگری میکنه که ما به اون مباحثه ی نور جهان میگیم من هستم های زیادی در مورد عیسی در انجیل یوحنا هست اینجا او میگه من نور جهان هستم عیسی به ما میگه که او نوع منحصر به فردی از نور هست او میگه من نوری هستم که به کسانی که مانند این مرد نابینا هستند بینایی میدم اما کوری کسانی که فکر میکنند میبینند با نوری که من هستم آشکار خواهد شد من داستانی رو به خاطر میارم از کودکیم درباره انفجاری در کلمبیا که بعد از انفجار معدنچی ها به مدت سه شبانه روز زیر زمین گیر افتاده بودند تا اینکه نجات دهندگان توانستند به اونها دسترسی پیدا کنند وقتی که تیم‌های نجات به اونها دسترسی پیدا کردند اونها شادی میکردند. یک معدنچی نجات یافته می گفت چرا شما هیچ چراغی با خودتون نیاوردید همه ساکت شدند چونکه که اونها چراغ در دست داشتند و چراغ رو درست مقابل صورت او گرفته بودند. او سه شبان روز بود که کور شده بود اما خودش خبر نداشت تا اینکه اونها چراغ آوردند و نورش رو به او تابوندند. عیسی در باب نه یوحنا داشت یک چنین چیزی می گفت: من نور جهان هستم و وقتی که من به عنوان این نوری که هستم وارد این جهان شدم کسانی که کور هستند خواهند دید و اونهایی که و بیناییشون فخر میکنند، به کوری خود واقف خواهند شد وقتی که او این چیزها رو گفت رهبران مذهبی باز هم دیدند که او چه منظوری داره و از او پرسیدند آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم عیسی به ایشان گفت اگر کور بودید گناهی نداشتید اما چون میگویید بینا هستیم به همین دلیل هنوز در گناه هستید چیزی که به نظر میرسه عیسی میگه اینه اگر نور نداشتید گناه نداشتید یکی از تعاریف گناهینه رد کردن نور این ادعای بزرگ عیسی در باب نه است عیسی در باب نه نور جهان هست در باب ده انجیل یوحنا عیسی شبان نیکو هست در باب ده من هستم دیگری را از عیسی میشنویم اونجا که میگه من در گوسفندان هستم این یکی از ادعاهای بزرگ عیسی هست و یکی از جوابهای بزرگ به این سوال که عیسی کیه در اون روزها وقتی گوسفندان شبانی در چراگاه بودند بودن، او آقلی موقت از شاخه‌های درختان یا کنده‌های چوب و یا هر چیزی که پیدا می‌کرد برای اونها می‌ساخت و اونجا معمولا دری هم داشت و شبان جلوی در دراز می‌کشید. خود او در اون آقل بود. گوسفندان نمی‌تونستند از آقل بیرون بیان مگر اینکه از روی او بپرد. و همینطور هیچ حیوان وحشی نمیتونست وارد اون آقل بشه. مگر اینکه از روی او میپرید به طور تمثیلی این ای زیبا برای بیان چیزی مثل این هست عیسی در گوسفندان هست ما گوسفندان هستیم و او در یعنی تنها راهی که شما میتونید وارد آقل بشید پریدن از روی او هست عیسی در تمثیل خودش به ما میگه که او تنها راه برای رسیدن به آقل گوسفندانش است هیچ مشکلی و هیچ حیوان وحشی نمیتونه به شما دست رسی پیدا کنه مگر اینکه قبلا از روی عیسی رد شده باشه یعنی اگر شما بیماری رو تجربه میکنید یا مشکلی دارید اگر عیسی مسیح خداوند و شبان شما هست اون وقت میتونید بگید خداوند شبان من است هیچ مشکلی نمیتونه وارد زندگی من بشه مگر اینکه از او بور کرده باشه تنها با اجازه او هست که مشکلات میتونه به سراغ من بیاد این به این معنی نیست که او این مشکل رو طراحی کرده بلکه فکر میکنم معنیش اینه که او اگر بخواد میتونه مانع از ورود اون به زندگی شما بشه در یوحنا باب 10 عیسی شبان نیکو هست باب یازده یوحنا باب مورد علاقی من در این انجیل هست در باب یازده شما داستان آشنای قیام ایلاذر از مردگان رو دارید که دو خواهر داشت مریم و مارتا نکته زیبا در مورد این داستان اینه که این کتاب مینیاتوری از عیوب هست. چیزی که این داستان به ما نشون میده جواب به این سوال هست: عیسی کی هست؟ عیسی راه حل بزرگترین مشکلات لاین زندگی هست. لاین حل ترین مشکلات زندگی چی هست؟ بیماری و مرگ. ما هیچ کدام از اون مشکلات رو نمیتونیم حل کنیم. اونها مشکلات غیر قابل حل زندگی هستند ما در پایان باب ده می خونیم که عیسی در جنوب اورشلیم خدمت میکنه اون جایی که یحیای تعمید دهنده خدمت می کرد ما در پایان باب ده می خونیم که عیسی در جنوب اورشلیم خدمت میکنه اونجا که یحیای تعمید دهنده خدمت می کرد اونجا حدود دو روز پیاده روی از اورشلیم فاصله داشت اگر امروزه به اسرائیل برید تمام طول بعد از ظهر رو باید با اتوبوس از اورشلیم تا جایی که ایسا خبر بیماری ایلازر رو دریافت کرد راه برید بعد از رسولان و خانواده خودش احتمالا ایلازر نزدیکترین دوست عیسی بود وقتی به عیسی گفتند که ایلازر بیماره کلمه ای که برای این منظور به کار رفت به این معنی نبود که او سرما خورده منظور این بود که او در حال مرگه شما فکر میکنید که عیسی باید بلا فاصله هر چیزی رو رها کرده و به طرف اورشلیم میرفت اما ما میخونیم که او در جایی که بود ماند چون او مریم و مارتا و ایلازر رو دوست داشت چون عیسی اونها رو دوست داشت همون جایی که بود ماند چرا همون جایی که بود ماند واضحه که میخواست به اونها چیزی یاد بده وقتی عیسی تعلیم میداد او کلاس درس و تخت سیاه نداشت او از این بحرانها به عنوان کلاس درس استفاده میکرد بعد از دو روز عیسی به رسولان میگه ایلازر مرده حالا بیایید به بیتعنیا بریم من به خاطر شما خوشحالم که اونجا نبودیم وقتی ما به بیتعنیا برسیم شما جلال خدا رو خواهید دید وقتی او وارد صحنه میشه مارتا دوان, دوان به طرف او میره من این دو خواهر رو خیلی دوست دارم اونها هیچ فرقی نکردند مارتا صبر نمیکنه تا عیسی به دنبال او بفرسته او هجوم میاره و حتی قبل از اینکه عیسی به بیت انیا برسه او رو ملاقات میکنه مارتا به عیسی میگه سرورم اگر اینجا بودی برادرم نممیرد ما نمیدونیم که قصد او چی بوده اما معتقدم که مارتا در واقع داش میگفت پس تو کجا بودی تو اشتباه بزرگی کردی این چیزیه که مردم بلافاصله به شبان میگن پس تو کجا بودی و مایلم بگم که حتی عیسی هم در همان دم حاضر نشد من فقط میتونم در هر لحظه یک جا باشم اگر من با این شخص هستم نمیتونم نزد دیگری هم باشم عیسی مارتا رو دوست داره و میخواد که به او درس بزرگی بده عیسی به او میگه من قیامت و حیات هستم هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که زنده بود به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد آیا این را باور کنی؟ در این آیات عیسی دو واقعیت اصلی زندگی مسیحی رو شرح میده زندگی کردن در او یا تماماً با او مربوط شدن و باور کردن به او. به غیر از بقیه چیزها عیسی داشت به او میگفت که مارتا برادر تو دوباره زنده خواهد شد. به نظر می نسه مارتا میگه من تمام مسائل مربوط به آخرت رو میدونم. میدونم که در قیامت او دوباره زنده خواهد شد اما عیسی میگه مارتا من قیامت هستم. آیا به من باور داری؟ و در چیزی که مارتا میگه استدلال اساسی یوحنا رو میبینیم. من ایمان دارم ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی این چیزیه که من ایمان دارم من مارتا رو دوست دارم چون خیلی صادقه او میگه من همینقدر باور دارم این حد ایمان منه بیشتر از این رو دیگه نمیتونم بگم ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی اما او نمیگه که باور داره مسیح قیامت و حیات هست و برادر او دوباره در همون لحظه زنده خواهد شد اگر شما جای مارتا بودید، اون باور می کردید. شبانی می میگفت که وقتی آماده میشد که اولین مراسم تدفین رو به عنوان شبان به جا بیاره، نگران بود چون نمی دونست چی چیکار باید بکنه. تنها مراسم تدفینی که او دیده بود، مراسم تدفین مادرش در 15 سالگیش بوده. یک شبان پیر بازنشسته به کلیسای او اومد او یک ایماندار یهودی مسیحی از چکوسلواکی بود. او مرد مهربانی بود و مدت ها بود که خدمت می کرد مراسم تدفین قرار بود یک شنبه بعد از ظهر انجام بشه بعد از جلسه کلیسا او از این شبان پیر پرسید من امروز مراسم تدفین به جا خواهم آورد آیا چیزی دارید که به عنوان مشاوره و نصیحت به من بگی؟ شبان پیر برگشت گفت عیسی هرگز در هیچ مراسم تدفینی شرکت نکرد او فقط در مراسم قیام حضور داشت و همین رو گفت و رفت وقتی او به مراسم تدفین رفت تمامی سعیش رو کرد، اما نتونست پیام خوبی به اونها بده. این مراسم تدفین بود، نه مراسم قیام. آیا وقتی به مراسم تدفین میرید، توقع دارید که تدفین به قیام تبدیل بشه؟ مارتا توقع نداشت. مارتا توقع نداشت که مراسم تدفین ایل آزر به قیام او تبدیل بشه. آیا میتونید رو سرزنش کنید؟ او گفت من چیزی رو که باور دارم بهتون میگم. او گفت که من ایمان دارم تو مسیح هستی. عیسی دنبال مریم فرستا بعد میخونیم که مریم آمد و به عیسی گفت اگر تو اینجا بودی برادر من مرد. او دقیقا همون کلماتی رو به کار برد که مارتا هم گفته بود اما فرقی در نحوه گفتن اونها بود ما اینو از اونجایی میدونیم که او قبل از اینکه این, این حرفها رو بزنه به پاهای عیسی میفته مریم همیشه نزد پاهای عیسی هست. در لوقا ده او نزد پاهای عیسی نشسته و به حرفهای او گوش میکنه حالا اینجا در میانه مرگ و بیماری او باز هم نزد پاهای ایساست و اراده ای او رو میپذیره در باب بعدی باب دوازده ای از مردگان برخاسته میهمانی شام بزرگی به افتخار ای برپا شده و ما میخونیم که مارتا خدمت میکرد مارتا مارتا هست و مریم نزد پاهای ایسا بود او عطر گرامباهایی رو روی پاهای ایسا ریخت مریم همیشه نزد پاهای ایسا هست او نزد پاهای عیسی میشینه و به حرفاش گوش میده. او نزد پاهای عیسی هست و اراده او رو میپذیره. او نزد پاهای عیسی هست و او را میپرسته. من معتقدم باب یازده یوحنا یک چنین چیزیه. در بحبه مشکلات لاینحل زندگی، بیماری و مرگ عیسی وارد صحنه میشه و چیزی که او میخواد از این دو خواهر ببینه واکنش درست اونها در مقابل های زندگی هست که خود او اجازه داده تجربه کنند او اجازه داد که اونها طوفان بیماری و مرگ رو تجربه کنند وقتی عیسی وارد صحنه میشه مهمترین چیزی اینه که این دو خواهر چه واکنشی به طوفان بیماری و مرگ نشون میدن واکنشی که عیسی آشکارا از اونها میخواد واکنش رابطه ای هست عیسی این واکنش رو از مریم میبینه اما به نظر نمیرسه از مارتا این واکنش رو دیده باشه به طور کاربردی به این داستان اینطور نگاه کنید آیا شما طوفان‌های زندگی رو تجربه کردید آیا همین الان در یک طوفان هستید واضحه که خدا اجازه میده قومش طوفان‌ها رو تجربه کنن از این داستان در یوحنا کاملا میشه متوجه این شد اگر همین الان دارید طوفانی رو تجربه می‌کنید که خدا اجازه داده اون رو تجربه کنید این داستان را به خاطر بیارید چیزی که خدا میخواد از شما ببینه واکنش درست شما به طوفان هست که همون گسترش رابطه درست با او هست نگاهی به تجربیات مسیحی خودتون بکنید و ببینید چه زمانهایی بوده که بیشترین نزدیکی رو با مسیح داشتید من سالهای زیادی که ایماندار هستم وقتی به سالهای راه رفتن با مسیح نگاه می‌کنم، نزدیکترین زمانهای من به عیسی زمانهایی بوده که طوفان‌های زندگیم رو تجربه می کردم. در اون زمانها بود که من به خدا نزدیکتر بودم اصولا نباید اینطور باشه اما به نظر میرسه این در مورد بیشتر مسیحیان صدق میکنه ما در کتاب مقدس میخونیم که نیکوی خدا میتونه ما رو به توبه برسونه لازم نیست که یک بلدزر از روتون رد بشه تا با خدا رابطتون درست بشه من نمیخوام زیاد روی این تاکید کنم اما به نظر میرسه نیکوی خدا ما رو به توبه نمیکشونه وقتی خدا با ما خوب هست، به سادگی او رو فراموش میکنید رابطه زیادی با او نداریم چون واقعاً به او نیازی هم نداریم چون احساس میکنیم خودكفا شدیم اما وقتی خدا به طوفانها اجازه میده او می‌خواد مثل مریم نزد پاهای او بیفتیم اراده او رو بپذیریم و کاملاً به او وابسته بشیم این داستان زیبا پایان خوشی داره وقتی عیسی رابطه درست مریم رو می‌بینه، بعد از اون این دختران را از طوفان زندگیشون نجات میده و برادرشون رو دوباره زنده میکنه خب اینجا طوفان رو میبینیم واکنش به طوفان رو میبینیم راه بترو می بینیم که همون واکنش درست به طوفان هست و بالاخره نجات از طوفان رو میبینیم که قیام برادر اونها از مردگان بود. تمام نکته داستان اینه که عیسی قیامت هست که معنیش پیروزی بر بیماری و مرک است. چون عیسی حیات هست. در باب 11 یوحنا به این سوالات پاسخ بدید. عیسی کیه؟ عیسی حل لاینحل ترین مشکلات زندگی هست و در باب یازده یوحنا ایمان چی هست ایمان واکنش به های زندگی هست هر مشکلی که باشه مخصوصا مشکلات لاینحلی مثل بیماری و مرگ واکنش درست به این مشکلات ما را به رابطهی با او میرسونه شما میتونید با افتادن نزد پاهای او رابطهای درست داشته باشید و بگید خداوندا اگر تو اینجا بودی این اتفاق نمیافتاد اما تو اینجا نبودی من میدونم که اگر میخواستی اینجا باشی میتونستی واکنش با درست به او پذیرفتن اراده او نزد پاهای او هست و حیات در این باب چی هست حیات بود ابدی هست و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد آیا این را باور می کنی؟ حیات ابدی حیاتی که تا ابد ادامه داره و حیاتی با چنان کیفیتی که خدا قصد داره ما اون رو تجربه کنیم آیا شما حیات ابدی دارید میتونید داشته باشید به پاهای او بیافتید به او اعتماد کنید و همین امروز به او ایمان بیارید عزیزان باور کنید و به عیسی مسیح اعتماد کنید و از امروز شروع کنید به تجربه حیات ابدی این دعای ماست متشکریم که با ما همراه بودید و از دیگران هم دعوت کردید تا در مطالعه کلام خدا به ما بپیوندن. امیدواریم حیات ابدی رو در زندگیتون تجربه کنید. زندگی مسیح رو در درونتون تجربه کنید و در ایمانتون رشد کنید. ترتیبی بدید در جلسه بعد هم در ادامه انجیل یوحنا با ما هم راه باشید. باشد که زندگی ایسا شما رو در هر کار نیک تشویق کنه و آرامیش او شما و خونه رو با شادی ابدی لبریز کنه.